کدو اومدی؟ این سوال میپرسه میخندی؟ فا... خودشو پیدا حا... دستی <تصحنت> دنبال دیگه نمیاد خوشگاز. تو چونه تنها گیرم دنبال یه دراماسی نیمی می دونم. تو ما که اول دندون که کی میخشیم یک کلوم! بسته کجا هست خوالی او همینش یکی جما دارید خواهده نمروش میکنی سیاه میکنم سیاه دارده نمکه هست به خیالت رو هفت میبینیو حتی این همست خودش خواهدش میگه دیدی بعضی از این زن بایه پرش شیویدو یا مشباره اینجا یه سرسوزن نمک فلفل یک کاری میکنن کنگ باشه تو نخوریم میدونی چرا ها چون کارشونو بلدن ما مطمئن باشه این چیزی به دنیا از حلقومتون چشیم بیرون چیه؟ ترسیدی؟ بیاریدش. ایدش گفتم بیارش من کشمالا هم هستم نه چه یه یا ابجمنه ابجمنه تنها زندگی من آخر امروز گری نمی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 چیه خواهد جون ما هر طرف که ما اینه او جن ظاهر میشی شلو کاری نگاه آماندم کمکت آقا گفته کاری بسر بکنم آقای شما چه کاری میتونه بسر بکنم تو نظیبی چی عزت میخواستم آقا بله مکنم وقتی پای آقای شما باشد تو زندگی ما همه چی خراب شد نیا کن دو خو کن چی شده آتش کرده هست تو همگوش چیزی نیست درست میشه همه آه. چیز دوست باشه گفته بیارم با تو پیش خودمون. تو اول باید مهبانو رو پیدا کنم اینم مهبانو مهبانو نکنم یه جور صحبت میکنه انگاه زن عقدی شو و علالش ناموز شماست بینیم نماز الم کجاست چه میگی تو آقا اون برد و پسی خوش بر بیا اونای که گرفتانت میدونستن رو کجاست بید دست سر ما ورده. من هیچی نمیدونم هیچی از هیچی خبر نرم فقط دور ما رو خواهد بکش انگشتت کار تو اتا ها جون ما آدم شو میشه می میخواستی بیگه میخواستی اطراف کنی؟ خواهد زودتر میگفتی قبلی که دست رو قط کنن این پل سرمون بیارم من شبیه درستم دکه اگه هم میخواد من رو بزرسونه همه خود رو دست داداش همه خودش رو میز یکیلی محکم گرفتش ساکی رو برد بالا برد بالا برد بالا خوبی تو دستش همی کشش آفتن اینجا موندار ما ای سهب ندبانه بکنه ما بریم به آره اینجا نباشیم بهتره بعد بیم شما؟ ما من جای نمیام یعنی چی؟ تو براب چی؟ یه غیرتی و سیرزیمینی بودنم انتظر داره من کار دارم با اون تو بچ کنم چه کار کنی؟ خوام به فستانش فره داره صفت نیست راست چیه؟ ممکنه مهربانو هنوز سالم باشه شاید الان که ما داریم با همینجا اختلاعات میکنیم اون یه جایی داره زرج میکشه تو فقط آدم های رو به ما معرفه کن آدم اصلی ها شو. قضیه بسته همونیز با شرکش میشه قضیه این بسته چیه؟ هی بابا شما که حرف چیا رو میزنی؟ من نمیدونم خانده یه بسته داد به من منم دادم به مهربانو الانم دست مه آرپای نفر بیشتر نیستن همه شون واسه مهنات خان کار میکرد خدا رحمتش کنه تو وقتی بود این مزقره بازیانه بود بعد شد بود حرفتو بذار آره آقا همه شونو میشنستم قادمه جدیده نکرده نه آقا اون کارا نمیکنه میترسه اتا اتماس سایه خوشم میترسه اعتماد نمیکنه اسمش چی؟ چی آقا آه, اه کلیم آقا کیرم. تو بیشرفی و نامردی لنگه نهره اتواش خواه اینجور کاراشو میزه دسته اون اون شیشه دیگه یه چونه همه کارمارا شو اون میکنه دهانه شب چفت چفته بسته بست بس. یعنی به این راحتی ها هر نمیزنه یعنی به این بست برای نازمی سرش بیاری تو حرف بزنه جواد درم <تصفيق> Terbi Dur Dur Dur Mervol,Holun,Urutsu,Genişe Geldi! Merva Mushi şey. Bana من منو کجا؟ کجا میتونم کجا؟ من اصلا دنبال من افتادی. چی؟ ری جون اسبام نمیدونه زدی به پا ای یادم اومد یادم اومد یادم اومد یادم اومد یادم میگم کجاست میگم کجاست بگو نزنه میگه نزنه نزنه what's going نه پسر ریزه یه پسره که باردار سیزه آه داره عاشق شدی آره خیلی این باید خیلی کارو میخونم بکنم نه ترسم بخوام حب بزنم بخوام عاشق شد زم بگیرم یه رشگر بچه قد و نمگرد کنم ها وقتی مرگ هم نزدیک دیدم فردن زندگی چه حالیه بس تو تاره مرگ و هم نزدیک پجور کردی بانه بانه بانه نگفتی عاشق شدی نشدی نرسیدی نرسیدی ترف زنده هست مورده نگرم داری از بزنه خودوش ای gir شام دیستو هستی هستمی جویلنگ پا علاف بیم خوب نی نمیاد بور نکرده با شما رو یادو چه با چیز آبادی بول آبادی با چیز آبادشم رو عباد اه اه. بابای هیچی ما که تو کار علاف زیر پوین برم واسه این دختره می سوزه تو این زله آفتاب سرخ و کباب شد هستی آباب نمیخوای آوا جون طلبه غزاده از جمعی الله نگاه کن به خورشید خانم راه نفسس باشه چرا تو دل نش مینمی کودون امی یروه Tamam چه نجاتشان؟ شیر باش نقد دادم به باباش تا اون دو تا چشش تو خونه کوش تلف نشن چقدر داری؟ دادم. ای شرکت بیبوز دام. تو مادی که کودک گوری پیدا دوست شد، خدا بی خبر او. میگم نمیشناسمش، ندیدمش. خوش میکن از ما رو تموم بش خو بر گبونشگاه رو چش چش میکن اون جای که اوگه رفتیم یه جای دو بیابون از نداره به خدا میبرم نشونتون میدم. چرا فکرین من از این خانم تونایی داره؟ تهران صفحه کوچیکیره. خبر از دود به گوش آدم میرسه شما گوشایی تیزی داری اصلا تلا داری خبر نیسته همین خوبه چند نفر رو میفرستم آدرس دقیقه بهشون بده چطور شدو پیگیریم به ازباه اون داره تاوارشو پاسه نگران نباشیم با خودش کاری ندارم یه چیزی پیششه که اونو لازم درم بیداره دوباره چی هستی؟ خیلی یا دوباری شیم حالا بیمارمون چطوره بهتره او بزر فرداست که بیاد خوده خیلی مراقب خوب و زمان باشیم اون کسیه که برای خونده. از بیمارستان مرخص شد متعلقم کنیم بیا میادتش بده نفاظی نمیدونم چرا هر وقت حرف محبت ها میزی میزنیم شما بگی میترسیم باید اینجا یه قدم به دیگه بیایی جلو زدمت تو پنجه دوز زمین با تو کاری نداریم دنبال یه زنم تنها زنه تمومه این منطقه منم اقوالو نامی نشت ندیدی ندیدیم بود میان دنبالش خسرو میدونی کجاست؟ ضعیفه یا بنداز دور کمرت این مادر و بچه رو به دعوا درمونی برسوند بفعل موی به سلامت تکلیفتو تو زندگیت روشن کن آدم بی تکلیف نمیشه حرفی که تا الان در مورد من شنیدی و فکر کردی درسته به نیست. من اطراف تهران نزدیکی های بلندی های به دنیا اومدم طفل بودم که مادرم دستم رو گرفت و برمکتر کنه پدر مهدو برای من درس بهونه بود برای دیدن مردی که جای خالی پدرم رو پرمی کرد به بحونای درس آخوش پدرانش نصیب همی شد سلام و خوش آمدی با ما بفرمون بفرمون به علیقی به علیقی به صالحی به سالها گذشت کنار دست پدرم با اینکه دلم هیچ وقت به نبود میرفتیم کارت بعدی سالها من مهدو خودو دیدم سلام سلام علیکم چی شده؟ در ربطه من کمک می کنم جاش مندازیم شما لازم نیست دست بزنید چه کارش داریم؟ کمک کنه پسر جلال از چیه دوباره سرگاریو بده بالاتر دوچم در بدهیم دستت در بکنیم اون پایینه؟ میخوام به این دست و طول بشه. دیگه اون بچه کوچیکی که کنار پدرش دیده بودن نبود دلم دمه باخت بود. با همین یه اونا پردننی نیست بیا این جااب تمیز باکن. چیه؟ زور زدی به من بیا برو؟ پدرم گفت مأموریت این بارمون اینه که زمین های پدر محلوخت رو بگیره. وقتی فهمیدم واسه زمین های پدر محدخت کیسه رو بودن. دست و پا که دستو پاش افتادم که بریم یه جای دیگه یه ماموریت دیگه سلام پدر دیده بودم چه خرایی از دستش برمیاد رفتم سراغ پدر مهدخت گفتم قبل از اینکه که پدرم برسه محدخت. دست مهدخت اگه نمیشنختمه میگفتم اینم یه راه جدیده برای چپاگول اموال مردمه اشتباه میکنیم اینجا موندنتون هیچ فایده ای نداره اونا ره ندارن میکشنتون با چیو؟ میدونستم با این حرف مهدختو برای همیشه از دست میدام تفنگو ولی پدر مهدختو برای حساب منو از آقام جدا کرد بهش گفتم آقام راه و روشش چی ولی پدر مهدخت نترسید ازم تفنگ خواست بجایی اینکه دست رو بگیر و بره به من سپرد اما نشد نشد که مهدختو برسونم به دست هم شد. سلام سلام حاجیمان منتظرتون بودن چشم دیشب تا صبح نخوابیدیم بابام ازم خواسته رسایلا رو جمع کنم فکردن شما میدونیم لابادم کاری از ازتون خواهش میکنم بابام حرف بزنید راضی شد با شما بیاد حتما حرف شما رو گوش باشه چشم حرف میزنم از نظرش برگرده آقام نزاشت قبل از رفتن ما رسید اینجا من فرمان میدم کی زمین مال خودشه کی مال خودش نیست سلام یکی باید این آدمی که به دیو تبدیل شده بوده میگرفت وسائل کنید میریم با لگت میریزیمشون بیرون کجا یه نامه گذاشتم تو وسائل محدود اونو میدید اموش من نباشم بزرگترش اموشه اشتباه میکنید اینجا موندنتون هیچ فایده نداره. اونا رحم ندارن میکشنتون با آقا توفیر زدید با جنم عقلی تو درست بری یه سری میونه سرا داری تو <تصفيق> امانت میدم دستت تا اینجا نباشی روی آقاد تفنگ بکشی من اینجا جلوشون بایی میستم تا اینکه نیفتن دنبال تو رو خدا بریم وسیعت نامه، بگیر بفرماین امانتتون میدونم بله. من تو زندگیم دوتا آدم خوب دیده بودم هر دوشونم به خاطر من مردم در کارتونو بکنین الان میرسیم تا شما گاریو بیارید و وسایلو بذارید پشتش من اومدم بابا اجازه بدین من کنارتون بمونم تو کشی آدم بدید کنارتون بجنگ نمیخواد تو توفن یاد بگیری این پسره داره باید میاد مواظبی حواظتو پرد نکنه تا عمود نگفته بله رو نمیدی بگیر مواظب باش تو را خامی نکنه شاید اگه من عاشق مهدو خلافی شدم پدرم همی که فیلم کرد عشق درد سر منو زمین گیر میکنه اصرانتشونا بمیرم. چه باشه؟ دختر بردی، بربی کردی چه فراون زن با خودمیه سر تازه بود هیچ راهی نداشتم جبران کنم تا اینکه خدا تو را سرم قرار داد مثل آه سلاح اون ادنه سابق باشه زمینو برسی خورا موازید کنی چه اجو نمیخواد نمیخواستم دو خیره رو بکشم خیالاتی برش داشتم تو توفنگی بشتاده بودیم گرفته ارتباط طرف هم داده بودی که آقا تو بکشم شبیه همون توفنگی بودیم من بهت داده بودم انتفانگه بذار کنار اگر نه میدونم چه کاریت کنم تو یه دی بی. از این روستا برو تو پسر یه دی بی الان دیگه نیست. بهتر که نیستم از هم نبودم تا میمودم پاکچ بذارم قیافه محدخت و پدرش میمود جلی چشمم شدم دشمن بزشته خودم شدم دشمن خونه هر کسی که مال مردم رو غارت میکنه خوشحاله خدا شما رو دوباره به من داد. بعد از, از اتون تشکل دفن فبکای چون فرموشون نخواه باید مدتی مختی بشه من تا همین جاشم به اندازه زیر دلیم شما رفتن که جوانش من قیل تنها تنکاریم که میتونم براتون رو اینه که براتون دعا به آوازی خوشبختی خوشبختی دارم با حضورتون تو زندگی من میتونین منو خوشبخترین مرد عالم بکنم مطمئن نم من شما سهن نوشتم از هم جدا ممنون که من تو تحرم می واقعا از علاقه من به خودتون خبر نداری؟ من؟ چون الان عصبانی هستیم ولی منم نمیتونم بذارم تنها راجع به خودمونم بعدن حرف می وقتی وقتی آرومتر شدیم من به اجازه کسی نیاز ندارم خودم خانواده دارم پدر دارم حرف می